گرامیان درود بر شما قایل آوایی دوم از کتاب برهان الیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون فخر رو با هم آغاز میکنیم ادامه جلسه هفته اول آغاز برهان نظم مومن یکی از مهمترین برهانهای اثبات وجود خدا برهان نظم است ناباور آیا منظورت از کلمه برهان دلیل روشن و واضح هست؟ مومن بله منظورم است که نتیجهش کاملا مقبول و منطقی و غیرقابل انکار است به شرطی که منطقی و معقول فکر کنی ناباور ادامه بده مومن ما با دیدن هر نظمی به وجود نازم پیمی بریم بلخص وقتی که آن نظم به هدف و قایتی بیانجامد مثلا یک ساعت را در نظر بگیر دو شاخصه دارد اول اینکه ساختاری منظم دارد و دوم اینکه این نظم هدفی را ممکن می‌سازد و آن تعیین زمان است آیا میتوان گفت که یک ساعت میتواند سازنده هوشمندی با هدفی مشخص نداشته باشد با دیدن ساعت به دو چیز پی میبریم اول اینکه ساعت سازی وجود داشته و دوم اینکه آن ساعت ساز با هوشمندی و به منظور رسیدن به هدف مشخصی به طراحی و ساخت ساعت دست زده چنانکه حاصل کارش به خوبی هدف او را محقق ساخته است اکنون دستگاهی وجود دارد که زمان را نشان می میدهد حال با نگاهی به جهان که سرشار از نظم است چگونه میتوان منکر وجود یک نازم شد و چگونه می شود به بدن یک انسان نظر انداخت و این همه نظم و ظافت در خلق اندامها را کار یک خالق هوشمند ندانست؟ کلیه ها با پیچیدگی فراوانشان در یک نظم شگفتانگیز هدف تصفیه خون را به انجام میرسند؟ همینطور گوش و اجزای تشکیل دهندهش هدف شنیدن را ممکن می کنند. به همین ترتیب، چشم حیرت انگیز انسان با نظمی باور نکردنی هدف دیدن را محقق می‌سازد. چه کسی جز یک خدای دانا و قادر می‌تواند چنین نظمی را خلق کند؟ نابابر آنچه تو در این استدلال انجام دادی این بود که ابتدا مثالی از مصنوع دست بشر یعنی ساعت آوردی؟ ساعت، اتومبیل، کامپیوتر و این قبیل همگی میتوانند مثال های تو باشند. در مرحله بعدی، مثال هایی از طبیعت را با اینها مقایسه کردی. وچه تشابه مثال های طبیعت را با مصنوعات بشر در دو چیز دانستید. اول در منظم بودن و دوم در هدفمند ساخته شدن. سپس چون فرض را بر این گرفتی. که وجه تشابه را به درستی انتخاب کرده ای بدون اینکه به وجوه تمایز مثال هایت توجه کنی گفتی حال که در دو چیز مشابهند پس باید حتما در مورد سوم نیز مشابه باشند لذا نظام مندی های طبیعت نیز خالق دانا و قایت نگری داشتند که با هدف و قایت اندیشی آنها را به شکلی آگاهانه و آمدانه خلق کرده است آنچه تو در باره طبیعت نظم مینامی میتواند تعادل نامیده شود. وقتی یک جرم آسمانی در دام جاذبه زمین میافتد و میلیاردها سال به دور آن میچرخد آنچنان که می توان از نظم چرخش آن برای محاسبه زمان استفاده کرد آنچه واقع شده نظم دست ساخته نیست بلکه یک تعادل است که میتواند گاهی میلیونها سال و گاهی به مدت کوتاهتر ادامه داشته باشد. تعادلها نه به صورت دست ساز و آگاهانه بلکه به شکلی تصادفی ایجاد میشوند و عامل ایجاد آنها قوانین پایهای فیزیک است. همین قوانین فیزیک که تعادلها را ایجاد میکنند آنها را برهم میزنند. شرایط بارندگی مداوم در وسطی از زمین میتواند به تدریج پوشش گیاهی آن را به صورت یک جنگل بارانی شکل دهد. پس از مدتی حیوانات و گیاهان با هم یک اکوسیستم متعادل می سازند. یک جونده از میوه یک درخت خاص تقسیه می کند و پس از دفع دانه آن درخت امکان رشد نسل بعدی درخت را فراهم می کند. کسی که فکر کند این جنگل دفعتن و در یک آن خرق شده است، ممکن است این نظم را دارای نازم و خالقی بداند که به شکلی هدفمند و عمدی این دو موجود یعنی جونده و درخت را با هم خلق کرده چون هر دوی آنها برای هدف زنده ماندن و بقای نسل به یکدیگر نیاز دارند. او نمیداند که پیش از شکلگیری این تعادل جانداران زیادی در همین منطقه زندگی و تولید مثل کرده اند و سپس به دلیل تغییر شرایط به تدریج منقرض شده اند و جایشان را به موجودات جدیدی که قابلیت زیستن در شرایط نوین را داشته اند داده همان قوانین فیزیک که تعادلهای قبلی را ایجاد کردند همانها باعث از بین رفتن آن تعادلها و موجودات قبلی شدند و تعادلهای فعلی نیز کاملا آسیب پذیرند و می توانند جایشان را به تعادل های جدید بین موجودات سازگارتر جدید بدهند. نظمی که ما می بینیم در واقع نظم نیست بلکه تعادل است. جهان هم این تعادل ها را به شکلی هدفمند نساخته بلکه تنها کاری که جهان می کند حفاظت از قوانین فیزیک است. خواه این قوانین منجر به ایجاد اندامی به نام چشم شود؟ خواه همین قوانین منجر به نابودی همین اندام و صاحب این اندام شود. تفاوت مهم مصنوعات بشر با اندامی مانند چشم در مدت زمانی است که این اندام ها شکل گرفتهاند. اگر در جهانی زندگی می کردیم که همین دیروز یا مثلا ده هزار سال پیش خلق شده بود و امروز موجوداتی با چشم و گوش و نظمی اینچنین در اندام زندگی می‌کردند. میشد این را به حساب خلقت یک نازم عال مقادر گذاشت به همان شکلی که ساعتی که تا دیروز نبوده و امروز ساخته می شود بدون سازنده ی دانا نمی توانست به وجود آید شکل گیری نظمی چنین پیچیده در زمانی کوتاه و به صورت خودجوش برای ما تجربه شده نیست و لاجرم آن را به حساب خالق توانا و دانا می گذاریم. اما تو دو چیز بسیار متفاوت را با هم مقایسه کردی. ساعت در مدت کوتاهی ساخته شده ولی آیا مطمئنی که چشم هم مخلوقی ناگهانیست؟ شواهد نشان می دهد ها سال تکامل چشم را به شکل امروزش در آورده است. ساعت به هدف نشان دادن زمان ساخته می شود. اما چشم به شکلی تصادفی و با جهش های جنتیکی به تدریج و در مراحل متعدد شکل گرفته و تکامل یافته و جاندارانی که محصول این جهش ها برایشان مفید بوده و قابلیت تشخیص نور امکان داشتن شکار بهتر یا شکار نشدن به آنها میداده شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. این تغییرات تصادفی موجب زنده ماندن آنها و امکان انتقال این جنهای جدید به نسل بعدی آنها را فراهم میآورده است. میبینی که با دیدن نظم در جهان و یا در موجودات زنده تنها فرضیه‌ای که میتوان مطرح کرد این نیست که یک خالق دانا و توانا برای طراحی و خلقت هدفمند آنها لازم است. بلکه فرضیه دوم یعنی تکامل تصادفی و تدریجی بدون نیاز به خالقی دانا و توانا نیز وجود دارد که میتواند نظم موجود را توضیح دهد. در حقیقت برای این دومی شواهد و مدارک فراوان و بیشماری یافت شده که دیگر میتوان گفت فرگشت یا تکامل از مقام یک نظریه خام فراتر رفته و در ذهن بسیاری از دانشمندان حکم یک حقیقت علمی بی را پیدا کرده است. مومن آیا این سوال پیش نمی آید که همان قوانین فیزیک را چه کسی آفریده است؟ ناباور مراقب باش که از برهان نظم خارج نشوی تو از نظم و نازم و یک استدلال قیاسی صحبت کردی تا ثابت کنی نظم ساعت و نظم پدیدههای جهان قابل قیاس هستند و من هم موجه بودن این قیاس را مورد نقد قرار دادم اگر قبول داری که برهان نظم به درد نمی خورد و میخواهی بحث را عوض کنی و به دنبال برهان علیت بروی قبول می کنم که به سراغ جواب این سوال برویم که آیا قوانین فیزیک و یا هر چیز دیگری لزوما نیاز به علت دارد یا خیر فقط اول بگو که آیا میپذیری برهان نز سست و عقیم بوده و کارش تمام است یا نه مؤمن نه قبول ندارم که برهان نز برهان ضعیفی است نمیتوان گفت که اگر تکامل باعث شکل گیری یک موجود منظم و شگفتنگیز همچون انسان شده باشد، پس به وجود خدای دانا نیاز نبوده است. چطور چنین موجودی با این پیچیدگی و زرافت و توانایی میتواند حاصل یک فرگشت کور باشد؟ لازم است خدایی دانا چنین فرگشتی را طراحی کرده باشد، به این معنی که خدا چنان جهان را خلق کرده باشد، که پس از گذشت میلیون ها سال منجربه به وجود آمدن موجوداتی اینچنین پیچیده و این اینچنین هوشمند گردد و لازم بوده که خدایی دانا در بسیاری جاها مستقیما دخالت کرده باشد. مثلا زمین این مناسب از خورشید دارد که بیشتر از آن موجب یخ زدن تمام آبها و کمتر از آن موجب تبخیر همه آبها می شود. همچنین است وجود میدان مغناطیسی زمین که باعث جلوگیری از برخورد بادهای خورشیدی به زمین و از بین رفتن جو آن می شود. نبود میدان مغناطیسی اتفاقی است که در سیاره مریخ افتاده و باعث شده که این سیاره جو خود را تا حد زیادی در اثر برخورد بادهای خورشیدی از دست بدهد و دیگر توان نگهداری و شکوفا کردن حیات را در سطح خود نداشته باشد. قرار گرفتن زمین در این فاصله دقیق از خورشید و دست به دست دادن عوامل بیشمار برای به وجود آمدن انسان همگی هدفدار بودن این نظام را نشان می داد و نظام هدفدار نیاز به نازم هدفمند و تراح هوشمند دارد. ناباور تو در استدلالت بر یک چیز تکه می کنی و سپس مقصودت را نتیجه می گیرید. تو بر وجود قطعی و بیشک کوش یک هدف هوشمندانه می می‌کنی و سپس نتیجه می‌گیری که خالق هدفمندی باید وجود داشته باشد حال با توجه به اینکه تو در این استدلال ادعا می‌کنی که هدف را به وضوح ای و در تشخیص هدف تردیدی نداری من این مطالبه را از تو دارم که دقیقاً بگویی چه چیزی را به عنوان هدف خلقت تشخیص داده ای. انتظار دارم بتوانی بدون ابهام شرح دهی این هدف که میگویی چیست اگر نتوانی آن را به وضوح و دقیق بیان کنی به این معنی است که ستون اصلی برهان تو حتی برای خود تو هم مبهم است من میگویم هر موجودی در جهان امروز هست و فردا نیست پس دلیلی نمیبینم که به هیچ کدامشان عنوان هدف بدهم از این همه موجودی که می آیند و می روند. کدامشان را هدف می دانی و چرا؟ بگو آن چیزی که تو هدف خلقت می دانی چیست؟ تو کدام یک از هستی های موجود در این جهان را به عنوان هدف شناخته لطفاً چیزی را نام ببر که هم من دیده باشم هم تو وگرنه استدلالت برهان نخواهد بود. مؤمن. اینطور که تو میگویی چیزی را نام ببر که هم من دیده باشم هم تو لابد اگر بگویم که هدف از خلقت موجودی است که میتواند به حقیقت نایل شود نخواهی پذیرفت و خواهی گفت که از کجا میدانی چه کسی به حقیقت نایل شده است تو خواهی گفت که حقیقت برای هر کسی و هر گروهی و هر دینی یک چیز است و معلوم نیست که کسی اصلا به حقیقت نایل شده باشد یا نه ناباور دقیقا، در واقع اگر ادعایت این باشد که گفتی و یا از هر چیز متافیزیکی مانند رستگاری بهشت، قرب به الله و از این قبیل به عنوان اهداف آفرینش نام ببری، برهانت فقط به درد خودت میخورد. چون اول خودت را یا شخصی را که خودت میشناسی، رستگار، نائل به حقیقت، اهل بهشت و یا دارای مقام قرب تصور میکنی؟ و سپس خودت یا آن شخص می هدف خلقت و اینگونه وجود خدا با این تصور شخصی تو ثابت می شود تصوری که نمی توانی صحتش را به من نشان دهی. تو نمی بر پایه یک ادعای کاملا شخصی و غیر قابل اثبات بگویی که برهانی در چند داری مؤمن آیا اگر بگویم که خلقت موجودی که استعداد نیل به حقیقت را دارد همان هدف آفرین است. قبول می‌کنی؟ ناباور. منظورت از حقیقت هر چه که باشد چه فیزیکی و چه متافیزیکی تا وقتی که نتوانستی آن را به کسی ثابت کنی پس پس ثابت کنی کسی هست که به آن رسیده باشد یا در آینده برسد قضیه مثل همان حالت قبلی است. از آن گذشته اصلا گیرم که مثلا مطلبی غیر متافیزیکی همچون اینکه نور سفید از های مختلف رنگی ساخته شده است حقیقت محض باشد و هر دوی ما روی حقیقت داشتن آن توافق داشته باشیم و بسیاری از انسان ها هم به این حقیقت نایل شده باشند چرا فکر میکنیم که چنین چیزی باید هدف خلقت باشد امروز من و تو تصور میکنیم که بعضی چیزهایی که میدانیم حقیقت محض هستند و شاید هم درست تصور کنیم ای بسا چند سال دیگر ما دچار زوال عقل و از بین رفتن سلول های مغزی شویم و هر آنچه میدانیم می‌دانیم و یا تصور می‌کنیم که می‌دانیم از ذهنمان پاک شود و پس از آن هم عمرمان سر برسد و خودمان هم از بین برویم چرا باید فکر کنیم وجود یک تصور از دانستن ولو اینکه کاملا با حقیقت بیرونی منطبق باشد هدف خلقت است تو چگونه ثابت میکنی که تصور دانستن حتی اگر با حقیقت بیرونی منطبق باشد هدف خلقت است امروز تصوری درست از حقیقت در ذهن من شکل میگیرد و فردا به واسطه زوال عقل و یا مرد این تصور نابود میشود چرا باید وجود این تصور در یک ذهن محدود و برای یک مدت محدود هدف خلقت باشد. چرا نباید اینطور به قضیه نگاه کنیم؟ که همان جهش ها این امکان حیاتی را برای ما فراهم کرده که بتوانیم درکی نسبتا درست و یا حتی درکی کاملا درست و دقیق از محیط اطراف و جهان پیرامون خود داشته باشیم. این امکان و استعداد علاوه بر دادن شانس بقای نسل و زندگی بهتر به ما، ما را قادر به درک چیزهایی پیش از نیاز حیاتی هم کرده است. به هر حال اگر همان مکانیسمی که درک جهان اطراف من را برایمان مقدور می کند، به درک مسائل علمی پیچیدهتر را هم برای ما مقدور سازد، چه دلیلی وجود دارد که تصور کنیم این یک اتفاق خاص و فراتر از امکانات طبیعت بیشعور است، و لذا باید دستی از غیب در کار باشد. چه ایرادی دارد که این را نه هدف خلقت بلکه یکی از طبعات فرگشت بدانیم. وقتی من می بینم که همان قوانین فیزیکی که موجب ایجاد حیات و تکامل آن می شود دقیقا همان قوانین موجب از بین رفتن حیات و منقرض شدن گونه ها و تولد افراد ناقص الخلقه عقب ماندگان ذهنی و بیماربنی زوال اندامها و حواس و مغز می شود چرا باید قبول کنم که هدف از خلقت یکی از لحظه های بینابینی این فرایند است چرا باید فکر کنم لحظه ای که در آن یکی از موجودات عالم موفق به درک و تصور یکی از حقایق عالم شده است هدف خلقت است چنین لحظه‌ای حاصل کارکرد دقیق قوانین فیزیک است و کارکرد دقیق قوانین فیزیک نیز آن را از بین خواهد برد گویا آن چیزی که هدف خلقت است اگر بخواهیم هدفی برای خلقت در نظر بگیریم اجرای دقیق و بی‌نقص قوانین فیزیک است زیرا از ابتدا تا کنون تنها چیزی که همواره بوده و هرگز متوقف نشده اجرای قوانین فیزیک بوده و هر تعادل یا به قول تو نظمی هم که محصول این قوانین بوده است پایدار نبوده تا بتوان به آن عنوان قایت خلقت یا هدف آفرینش داد و از این بابت مطمئن بود. در بهترین حالت تو چیزی را میتوانی هدف خلقت بدانی که با خلقت جهان محقق شده باشد و جهان از آن خالی نشود. همانطور که ساعت از وقتی که ساخته میشود زمان را نشان میدهد. اگر دستگاهی ساخته شود که پی در اعدادی را نشان دهد و گاهی اوقات این اعداد مطابق با زمان دقیق باشد نمی‌توان گفت که هدف این دستگاه نشان دادن زمان است اینکه در طول میلیاردها سال بعضی اوقات بعضی موجودات نسبتاً هوشمند بعضی باورهایشان با بعضی حقایق منطبق است را نمی‌توان با اطمینان هدف خلقت دانست دستگاه جهان هیچگاه نشان نداده که منظور دقیقش از فراوری آنچه به آن داده میشود کدام یکی از محصولاتش است همینقدر میدانیم که هر ماده اولیه ام از نیرو و جر که به آن داده میشود چنان آن را فراوری میکند که نتیجه کار مطابق با نتیجه فرمولهای فیزیک باشد که آن هم خود ساختار دستگاه است یعنی این دستگاه کاری جز حفظ ساختارش انجام نمیدهد. تنها چیزی که از ابتدا تا کنون محقق شده اجرای بی کم و, و بدون استثناء قوانین فیزیک است. بقیه چیزها فقط اند و رفتهاند و نمیتوان با هیچ معیاری آنها را چنان ارزشگذاری گذاری کرد که یکی از دیگری برتر و مهمتر باشد و بتواند با قطعیت عنوان هدف خلقت را به خود بگیرد. آنچنان که به کار استفاده در یک برهان بیاید مؤمن اما تو هنوز پاسخ مرا ندادی که چگونه ممکن است همه شرایط شگفتانگیز فراهم شود تا همین لحظه های به قول تو گذرا اما از نظر من با شکو ایجاد گردد منظورم همان فاصله حیرت انگیز زمین تا خورشید و امثال آن است ناباور آیا منظورت این است که همه ی آنچه گفتی و خیلی بیشتر از آن و کلن شرایط حیات در یک سیاره غیر ممکن است به صورتی تصادفی شکل بگیرد؟ آیا ایجاد این شرایط را قطعا نیازمند دخالت الهی میدانی؟ منظورم از عبارت غیر ممکن،, غیر ممکن به معنی واقعی کلمه است. مؤمن آنقدر احتمالش کم است که میتوان آن را غیر ممکن دانست نابابر، احتمال کم تفاوت بسیاری با غیر ممکن دارد. اولی را نمیتوان در برهان به کار بود، اما دومی را توان. در کهکشان راه شیری حدود 200 میلیارد ستاره وجود دارد که بسیاری از آنها ممکن است دارای سیاراتی باشند. در کل جهان قابل مشاهده ما حدود 200 میلیارد کهکشان وجود دارد. با این تعداد کهکشان و این همه ای که در هر کهکشان میتواند باشد و سیارات بیشماری که ممکن است در این همه کهکشان وجود داشته باشند احتمال بودن سیارات سنگی همچون زمین که شرایط پرورش حیات را داشته باشند زیاد خواهد بود. بیا فرض کنیم که از بیرون چنین جهانی به آن نگاه می تو محاسبه میکنی و به این نتیجه می‌رسی که در بین این چند صد میلیارد میلیارد ستاره و سیاره و در طول بیش از 13 میلیارد سال با محاسبات ریاضی تنها محتمل است یک سیاره چنان شرایطی داشته باشد که حیات در آن به وجود آید و به چنان ای برسد که موجودات هوشمندی همچون انسان آن پدید آید موجوداتی که در چرایی وجود خود به سوال کردن بپردازند. پروازه است که اگر تو با خبر چنین سیارهای واقعا وجود دارد اصلا تعجب نخواهی کرد چرا که محاسباتت هم احتمال وجود آن را می میکرد. اما شاید موجودات هوشمند آن سیاره در وهله نخست از بودنشان تعجب کنند زیرا آنها در اطراف خود سیاراتی با امکان زیست موجودات هوشمند نمی بینند واقعیت این است که تا وقتی که شانسی برای وقوع یک رویداد وجود دارد روی آن عجیب و غیر ممکن نیست تا مجبور شویم برای توضیح وقوع آن به وجود دست غیب متوسل شویم تنها وقوع رویدادهای غیر ممکن ایجاب می‌کند که دست یک موجود هوشمند را برای توضیح آنها وارد محاسباتمان کنید آیا تو هرگز ای با محاسباتی نشان دهی وجود سیارهای در فاصله مناسب و دارای میدان مغناطیسی و ده ها خصوصیت دیگر و خلاصه وجود یک سیاره حیات پرور همچون زمین غیر ممکن و محال است آیا اینکه تو از وجود زمین شگفت زده میشوی برهانی برای وجود خداست آیا شگفت زده شدن یک برهان است یا یک حالت روانی ناشی از عدم احاطهٔ علمی و محاسباتی به امکان آنچه روی داده اینکه از وجود چشم کلیه کبد مغز نسبتاً هوشمند انسان و امثال اینها شگفت زده میشویم برهان حساب نمیشود هرگاه با محاسبات منطقی نشان دهی به وجود آمدن همه اینها غیر ممکن است آنگاه وجود اینها یک برهان برای اثبات خالقی دانا حساب خواهد شد حالا دوباره میپرسم آیا محاسباتی انجام داده ای که نشان دهد احتمال وجود سیاره ای همچون زمین صفر است یا خیر آیا محاسبه ای علمی کرده ای که نشان دهد احتمال ادامه فرگشت تا رسیدن به موجودی نچندان هوشمند همچون انسان صفر است؟ عنوان روح مومن خیر، من محاسبه علمی که نشان دهد احتمال وجود سیاره‌ای زندگی پرور همچون زمین مطلقا وجود ندارد انجام نداده اما در مورد به وجود آمدن موجودی همچون انسان که دارای روح است، و در بالاترین درجه از قدرت شناخت قرار دارد، میتوانم با اطمینان بگویم که از ماده بی جان چنین موجودی نمیتواند به وجود آید. توجه داشته باش که انسان نه تنها هوشمند است، بلکه جزئی غیر مادی نیز دارد و آن روح اوست که قابل این نیست. روحی که نمیتواند از جنس ماده باشد، روحی که یک هستی یک پارچه و غیر قابل تجزیه است در حالی که هستی مادی انسان تجزیه پذیر و دارای اجزاء گسسته است چنین موجودی آشکارا هدف خلقت است زیرا چیزی بیش از یک موجود مادی با خصوصیات صرفاً مادی است این موجود ترکیبی از ماده و غیر ماده است و باید که برای توجیه وجود چنین ترکیبی به وجود خالقی هدفدار متوصل شد گیرم که تغییر و تحولات ماده و یا به قول تو فرگشت نهایتاً بتواند به ایجاد موجود پیشیدهی چون انسان ختم شود. دیگر چه دلیلی وجود دارد که در این نقطه از تکامل این موجود مادی با یک هستی غیر مادی ترکیب شود تا انسان زیرو را بسازد؟ آیا نمی شود گفت که بر اساس منطق و محاسبات وقوع این مرحله آخری یعنی دمیده شدن روح در بدن انسان مطلقا غیر ممکن است مگر اینکه دستی هوشمند و قدرتمند در کار باشد، دستی که هدفی مشخص از این ترکیب دارد؟ ناباور اینکه تو دیگر از نظم و نیاز به وجود یک نازم هدفمند صحبت نمی کنی برای من نکته مثبتی است. این یعنی که دیگر برهان نظم را پی نمیگیری و حالا فقط از غیر ممکن بودن یک ترکیب از ماده و غیر ماده صحبت میکنی. بسیار خوب. من فکر میکنم که بهتر است این بحث را هفته آینده در همین جا پی بگیریم. راستش من سوالاتی از تو درباره روح دارم و فکر میکنم پاسخ آنها زمان زیادی ببرد. ما موافقم. چون دیگر بیش از این نمیتوان اینجا نشست. ظاهرا میخواهند تعطیل کنند. در زم، سوالاتت را هم میتوانم حدس بزنم. گرامیان همینجا در صفحه 25 فایل آبایی دوم از کتاب برهان ادلیت پایان پیدا میکنه تا درودی دیگر بدروفت.